بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد داستان حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام زمانی که حضرت یوسف علی و وسلم خواب را تعریف کردند و پدر گرامی یعقوب علیه الصلاة واسلام تعبیر فرمودند که این خواب یک پیام بسیار بزرگ از نبوت و پادشاهی حضرت یوسف علیه صلات و السلام را بر دارد به خاطر همین فرمودند که خواب را برای برادران تعریف نکن حضرت یوسف علیه صلات و السلام وقتی که خواب را تعریف نکرد اما عشق و علاقه یوسف علیه صلات و در قلب یعقوب برای کسی پوشیده نبود همگان میدانستند که یعقوب علیه صلات و چه حسی و چه علاقه نسبت به یوسف علیه صلات و سلام دارد بخاطرین اللہ رب العالم فرماند که در داستان یوسف حکمتهایی هست و نشانیهای زیادی ما گذاشته این بعد از اون که خواب تعریف نکرد اما اونها میدونستن برادران با هم مشوره میکردند با هم نشستن و در صحبت هایشان گفتند که با مشوریک تنها بودند به دور از حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام با خودشون گفتن که ادقالو لیوسف و اخوه احب الى ابینا مننا یوسف و برادرش پیش پدر خیلی محبوب هست از ما که او رو بیشتر دوست داره هم یوسف دوست داره و هم برادر یوسف بنیامین و خیلی دوست داره و نحن اما در حالی که ما یک جماعتیم در حالی که ما یک قدرتیم عصبه از ده تا چهل و شامل میشه فهموندن در حالی که ما یک گروهی هستیم یک جماعتی هستیم اما محبت یوسف که یک فرد هست یک نفر هست طفل هست او رو بیشتر دوست داره ان ابانا لفی ضلال مبین این پدر این پدر ما به راه درست نیست داره اشتباه فکر میکنه ما رو فدای یک نفر کرده ما یک جماعتیم یک گروه همین جوان مرد قوی اما یوسف یک نفر وقتی که همه رو فدا یک نفر کرده پس این کارش درست نیست حالا چکار کنیم تا این عشق از قلب یعقوب بره بیرون و ما داره جایگاهی باشیم پیش پدر راه چیه؟ مشوره میکردن با هم نشسته بودن صحبت میکردن تا این که بعضی گفتن که اقتل و یوسف بعد یوسف کشته بشه تا زمانی که یوسف زنده هست حالا ما جایگاه پیش پدر نداریم قلب پدر مشغول عشق یوسف هست یا عویت رحوه یا این که بیندازید اردن یخلالک واجوابی کن دور بیاندازید جایی که اونا بگیرند یوسف گم بشه بعد از اون دیگه محبت پدر خالص برای شما خواهد بود بعد شما رو با شما محبت میکنه و دوستی پدر به شما بیشتر میشه واتاکونو مینبادی هی قومن صالحین بعد از اون دیگه ما صالح میشیم اینجا دو معنی داره یعنی ما خالص مال پدر میشیم پدر با ما محبت میکنه یا معنی بعدین است که وقتی که ما این کارو کردیم و یوسف علیه صلات و رو از سحنی برداشتیم حالا بعد توبه میکنیم الله رب العالمین بخشنده هست مهربان از ما رو میبخشی و گناهی کردیم کفر که نکردیم به این صورت داشتن خود را تسلیمی دادن برای یوسف را بر بدارن بین اونها یک نفر گفت که لا تقتلو یوسف نه یوسف را نمیکشیم کشتن بزین خوبی نیست را باید بکشیم اما وعلقوه فی غیابت الجب در این چاه بیندازید که حالا دیگه همونجا یلتقیت و بعض سیار بعضی مسافرها راه گزارها کاروانیا می آیند و یوسف با خودشو میبر حالا دور میشه از اینجا ما کاری نداره من ما میشی مال پدر پدر می مال ما ما راحت و داستان هم تمام به این صورت خواستن که خود را یک تسلی بیدن بعض اگر کاری میکن هم این کار شما انجام بده بیشتر من اجازه نمیدم حالی مشوره رو کردن حیله رو درست کردن و با هم دیگه خواستن به دی صورت های قلب پدر رو خالی کنه از مهر یوسف اما عشق و علاقه محبت با تیر و اصله از بین نمیره با قتل هم از بین نمیره بیشتر میشه و انسانو بیشتر وابسته میکند دردش بیشتر میشه. اینجا هم این گزینه خوبی برای اونها نبود، بلکه دردی شدیدتر فاصله تر بین یعقوب و فرزندان انداق. همین کار اونها فاصله رو خیلی زیاد کرد که یعقوب علیه سلطه سنت از اینا خیلی فاصله کرده تنها آمده. و فرزندان هم جایگاهی نداشتند. اینا از دو کار سخت یک آسونتر و برادر بزرگتر پیشنهاد داد ام این بود حسد نگاه کو چقدر بد هست چقدر بد هست که انسان حتی بقاتل انسانو میکشاند دستور میده قاتل قاتلشو انسانو قاتل میکنه خودشو برای همیشه جهنمی میکنه این اصل حسد هست این حسد اونها رو وادار که بقاتل رسانده کی؟ یکی از جگرموشه هایشون فرزند پدرشان بوده برادر اونها بوده اما حسد این بد هست و بعد اینه بدونید که حسد همیشه از بستگان بی... سنگینتر و بیشتره کسانی که زیاد حسد میکنه با شما اونها افراد نزدیک شمای اونها که دورن از بستگان نیست زیاد پروایی ندارن زیاد هم مثل حسود نیست اما برادر هست حسودی میکنه، خواهر حسودی میکنه، بستگان نزدیک بیشتر حسودی میکنند عموماً بستگانند که ضربه ها رو میزنند اینای که زیاد ضربه رو وارد نمیکنند پس حسد خیلی مرض خطرناقی هست حالا خیلی سنگین هست که نگاه کن اینجا برادران پیغمبرزادی بودند اونها رو وادار که برای کشتن برادر از بین بردن برادر اون برادر نازنین اون حسن یوسف که چقدر زیبا که حسن ظاهری مانع قتل میشه زیبای خودش یکی سپر هست برای جلوگیری از خیلی مشکلات اما این زیبایی هم مانع اینجا نشد این برادران در مورد اسامی برادران بعض علماء کردند یهوزا روبیل شمعون لاوی زبالون یشجر دینه دان نفتالی جاد آشر اینها بودن این اسامی که بعض علماء و مفسرین ذکر کردیان یهوزا روبیل و شمعون لاوی زبالون یشجور دینا دان نفتالی جاد و آشر هفت نفر اول یعنی و روبیل و شمعون لاوی زبالون یشجور اینها دیگه بچه های لیا بودن لیا خانوم اول حضرت یعقوب بوده و لیا هم دختر خاله حضرت یعقوب بوده و چهار نفر بعدی که دینا دان نفتالی جاد آشوریان اینها که بودن اینها از دو کنیز بودن یکی ظلفه و دو بلها ظلفه و بلها خانم حضرت یعقوب علیه الصلاة وسلام زمانی که لیا فوت کردند حضرت یعقوب علیه الصلة وسلام با خواهر بعدی راحیل ازدواج کرد که یوسف علیه الصلاة وسلام و, سلام و بنیامین متولد شدن یوسف و بنیامین بچه های راهیلن که بعد از لیا متولد اینها دیگه این برادران این کارو کردن در اصل هم پسر ها هم بودن برادر هم بودن پسر خاله بودن یعنی نسبت خیلی عمیق بود با اونها مادر اونها یک اجنبی نبود اما با وجود این دیگه حسد شد که اینها رو وادار کرد پس این است که کسانی که در بیت نبوت بودند، نبوت می در درستی گرفته بودن از بیت نبوت این حسد اونها رو گذارد پس این است که با وجود این که انبیاء علیه مصرات و معصومن اما بچه ها معصوم نیستن اینجا بچه یعقوب بودند که معصوم نبودند. پس وقتی که بچه های معصوم نمیشن بچه دیگران هم معصوم اینجا نمیشن پس اینجا این اعتراضی گفتم پدر ما فی ظلال مبین پدر در یک گمراهی هست ما رو رها کرده چرا اینجوری کرده پدر اف اف ای هم حسد اونها رو وادار کرد که به سوی عدم نسبت به پدر این هست حسد بد که انسان رو به سوی ادب و سوی رفتار هم وادار میکنه و این حسد بود که اینها رو به این حالا قریش هم همین حسد رو داشتن نبی الله رب العالمین چیز آوردن واسه نبی مکرم اسلام به پیغمبری مبعوث شده اون کسی که حسد کر قریش بودن چرا این پیغمبر شد چرا از ما کسانی دیگر پیغمبر نشدن؟ چرا سردارای بزرگ سرمایه‌دارها بعض الله رب العالمین داری تسلی میده به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و که اگر دارن قریش حسد میکنن پس بدان که اونهایی که پیغمبر زاده بوده اونها هم حسد کردند و بعد این از که یهود هم حسد کردند چرا از بنی اسماعیل آخرین پیغمبر اومد؟ چرا از بنی اسحاق پیغمبر نا اومد؟ یهودیها یهودی ها قبول نکردن؟ چون نبی مکرم اسلام صلی الله عليه وسلم از بنی اسماعیل بوده همین حسد اینجا وادار میکنه به قتل و جای وادار می به کفر. چیزی که یهودیت قبول نکردن اسلام را همین حسد بود که و نهار حسد وادار کرد که اسلام را قبول نکنه چی گفتا؟ الله من بث مشتربی اننفس ان ما انزل الله ان یونزله بقییان حسد اینها رو مانش چرا اللہ اینجا قرآن نازل میکنه. پس حسد هم انسانو به کفر می حسد انسانو قاتل میکنه حسد انسانو به جهنم میرسونه حسد کمالات انسان رو میگیره حسد ایمان از انسانها سل میکنه حسد اون رفتار خوب از انسانها میگیره. بعد حسد بعد اخلاقی می آورید. حسد یک مرض بسیار خطرناکه. اینجا اون موقعیت اون صالحین پیدا میشه. نبی و قرب اسلام الله فرستاد که یک از کاراتی بود و یزکیه اینها را تزکیه بکن. اگر قلب تزکیه نواشه امراض باطنی مانند حس حسد انسان ها رو از بین میبره اینها گفتن پیش پدره بین خود چی می برن؟ نحن و ناحه عصب ما یک جمعاتیم قوی. الله ما رو نگاه پدر ما رو گذاشته، اونو گرفتی. یعنی این کل ما قدرت دارین تمام کارهای خون رو ما انجام میدیم. چوبادی ما میکنی، وسایل ما تهیه میکنی. کلی کارهای خون پدر را کفالت پدر بر آهده ما هست، ما همه کارها رو میکنی، اما محبت جای دیگری، دل جای دیگری. این بود حرف اونها، پیام نحن عصبه این بود. ما جماعتیم ما پدر ما داری ما روحا میکنه. ما ده نفریم، اونها دو نفران. ده نفر رو فدای دو نفر کرده پدر ما. ما بزرگ، بالغ، جوان، اونها تفر و سغیران. به خاطرین گفتن که اقتلو یوسف. هست یوسف رو بکشید یا دو در سرزمین دور رو بیندازید. تا بتونی پدر را برای خود تانوی کنیدید. و تکونو من بعده صالحین بعد از پدر، بعد از یوسفی که نواشه ما توبه میکنی کارهای پدر انجام میدیم و خدمت میکنیم خدمت که بکنی پدر راضی میشه و برای مطلب خوار میکنه پس گناه هم تمام میشه حالا به این صورت یعنی گناه رو برای صالح بودن یک ابزار برای صالح بودن فکر کردن گناه هرگز انسان گناه به نیکی نمیرسونه و گناه خوبی ها از خوبی ها دور میکنه پس بنا چیز خوبی نبود قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف یک از اونها به یوسف نکشید این کی بود شخصی که اینجا بود بعضی میگویند که این یهوذا بود یهوذا که پسر بزرگش بود که یوسف را نکشید قتل خیلی خطرناکی قتل میخواهید بکنی نه قتل ما نمیکنی داخل چاه بیاندازی تا بعد از اون دیگه خودش بیاد می افراد میگیرن میبرن ما راحت میشیم و ما وقتی یوسف رو نبینیم پدر هم نبینه کم کم فراموش میشه و کار ما هم ما به اهداف ما میرسیم و بعضی گفتین اون کسی که نگذاشت که بکشن اون روبیل بود یهودا نبود یهودان نبود روبیل بود روبیل هم چون که پسر خاله بود برادر هم بود پسر خاله هم بود به مادرها خواهر بودن گفت نه و خود روبیل به اطبار عقل دانش از همه تر بود عقلش خیلی بیشتر و فهمیدتر بود بعضی میگن یَهُوذا بود و بعضی از مفسرین گفتیم که روبیل بود گفت نه نکوشیدین این را باعث بود در مسیر بیاندازی تا که حالا اونو بگیرم حالا این چاه کجا بود بعضی میگن این چاهی قرار بود او را اندازان در بیت المقدس بود و بعضی میگه این در اردن قرار داشت حالا جلوتر ان شاء در مورد چاه میگیم که چاه چگونه بود محمد اسحاق یکی از اصحاب سیرت امام المغازی هست در سیرت دست طولایی داره میفرمائند وقتی که اتفاق کردن یعنی اتفاق رسیدن اجماع کردن برای اینکه باید چکار کنی؟ سلی رحمی رو از بین ببریم نافرمانی پدر بکنیم اتفاق کردن که اون محبت قلبی رو از بین ببریم بعضی میگه آقا این کار میکنیم باید پایش بیستید محبت ها معنی نشن باید این انجام بدهیم. وقتی اتفاق کرد بر این که محبت ها مانع نباشن وقتی که کاری کردن که یک طفل صغیر و ناتوان را از بین ببرند، وقتی که تذرو کردند حضرت یوسف علیه السلام تصرا قبول نکردند گفتند که اینجا گرگی او رو خورده بعد چیکار کردند از یک طرف به صغیر ناتوان ضربه زدن. از یک طرف به پدر پیر ضربه وارد کردند هم یک طفلی را از پدر پیر گرفتند و هم پدر پیر نیازی به اون عشق پسر داره خود را با او تسلی میکنه و هم پسر صغیر هم نیاز به محبت پدر پیر داره این چیز وابستگی شدید بود این ها آمدن این وابستگی شدید را برد از بین بردن حرمت ها رو شکستن فضائل را رعایت نکردند یعقوب هست پیغمبر هست یوسف هست که برادر معصوم هست این خطر ها رو گرفتند حق نه حق پدر اونها رو مانده شد نه حق برادر کوچک اونها رو مانده شد تا بین محغوب بین عاشق و معشوق فاصله اند همین ها بین پدر و پسر فاصله انداختن بین طفل و پدر فاصله انداختن بین پیرمرد و پسر فاصله انداختن بین عاشق و معشوق فاصله انداختن همه اینها سنگین بودند پر زوف قوت بود ذوف سنی بود حاجت زیاد بود اینها رحم نکردند چقدر اینها سخت شدن، اینها حسد این حسد از انسان چقدر کور میکنه قلب انسانو کور میکنه و کوری بر قلب انسان میآید. همه اینها رو پایمال میکنه و رعایت اون این همه مناسباتو نمیکنه ارحم الراحمین فقط الله رب العالمین است قالوا یا ابانا مالک لا تعمن علی یوسف وَإِنَّ لَوْلَا لَنَاصِحُونَ چه جان چرا شما بر ما اعتماد نمی کنید. چرا حرف ما رو قبول نمی, قبول نمی چرا نمی یوسف با ما بیاد ارسل معنا غدا یرتع و یلعب و إن لاول حافظون بذارین یوسف بیا با ما فردا بری داخلی کو بگردیم بکریم بخورین تفریح کنین و بازی کنیم. اما و, و اینا لو حافظو ما ده برادر توانمند قوی ازش محافظت میکن. علش ما یک نفریم ما ده نفریم ببین از این یوسف ما حفاظت میکنیم اینها وقتی که به توافق رسیدن دیگه با هم پیش پدر اومدن. یعنی وقتی پیش پدر اومدن که این کارو بگن و برادر بزرگ روبیلو جلو کرده حالا تو صحبت بکن جناب روبیل هم رفتن جلو و این پیشنهادو به پدر دا جا حالا بزار که ما با يوسف فردا دریم با یابان تفسیر کنیم و, و این کارها را انجام میدیم. از این گفتن که لا تامان علی یوسف و اینا له ولناسیحون. یعنی گویا قبلها آمده بودند. چندی بار پیش دادن که یعقوب قبول نکرد. با خاطرین چرا لا تامان نه چرا قبول نمیتونی تو؟ چرا اعتماد نداری بر ما؟ همین روال کلامی و خود اسلوب کلام اینه میرسونه گویا قبلا این نه داده شده بود به یعقوب اله و ابن این بار دوباره گفتن که ما لک چرا شما بر ما اعتماد ندارید و او را نمی این یک توطئه بود برای چی برای قاتل قتل آوردن در قلبی که پر از حسد بود از این حسد خود را دور کنید پس این است که اینا بدون یک حکمت اینجا همیشه اونهایی ای که توطیه‌گرند اونها دشمنند همیشه دشمن و توطیه‌گره اون دشمنی خود را بدی و خرابی خودشو در خوبی ها مخفی میکند. همیشه با کلمات بازی میکنه کلمات زیبا بکار میبره سوالات خوبی رو مطرح میکنه تا قلب طرف اونجا تسخیر بکنه پس همیشه شر در خوبی ها مخفیه و همیشه این کار را شر به این صورت انجام میده اینها که میخوان مسلمان ها رو از بین ببرند و دست دوستی دراز میکنن اظهار محبت میکنن در اصل در قلب اونها شرری هست که به ظاهر خیر رو جلو میگذارن و این رو میگوزن پس اینجا هر کلام خوبی خوب نیست هر حرف خوبی خوب نیست خیلی از حرفهای خوب در داخل اونها شر نهفته هست انسان نباید از هر چیزی شنید خوب بود فکر کنه داستار خوبه ولی مفتاتانی عمل بکنه ش... شاید در این چیزی که مثلا همیشه شری نهفته باشه تا اصول شرعی او را اجازه نداده انده نباید اقدام بکنه حضرت یعقوب علیه صلی اللہ اینجا اقدام نکره اونها رد کرد و اینها نگذاشتن اصرار کردن برای بردن حدیثی داریم داخل استحیه بخاری حضرت حضیفت ابن یمان رضی اللہ تعالی عنهم می فرمایند که همیشه مردم از رسول الله صل نستای به ها سوال میکردن، فلان خوبی هست فلان خوبی چیه؟ بگی من سوال میکردم از شر، من از بدیها سوال میکردم. چرا؟ از ترس این که بدی بیاد و منو بگیره، خواستم بپرسن تا بد بدیها رو بشناسم. اگر بدی دیدم من فورا خود را نجات بدهم. وقتی که اینجوری بود، پس پرسیدم که یا رسول الله این نکن نه فجاهیلیت. ما در زمان جاهلیت بودیم تا اینکه الله رب این خیر بزرگ اسلام را آورد و شر جاهلیت کندش شد اثر ما مسلمان شدیم آیا بعد از این خیر شری در کار هست واره شر می آید بدی و مانند گذشته ها فرمودند بله بعد از این خیر شر هست بعد فرسیدند آیا بعد از اون شر خیری هست یا نه فرمودن که بله بعد از اون شر خیری است و فی ده اما دود داره داخل اون شر با خوبی بعد دود هست یعنی واضح نیست حق و باطل قاطع میشن خوبی هست و هست افراد صالح کمتر میشن بعد سوالی پرسید یا رسول الله بعد فرمودن که تعریف و من و تون کرد از اون خوبی هایی که داخل اون دود باشه بعضی با رو تو میشناسی این خوبه بعضی رو نمیشناسی بعد فرمودن که آیا بعد از اون خیلی تی ایک خیلش کمتر شد شری هست فرمودن که بله بعد از اون شر هست گفت اونها چیاند فرمودن که دعاتون این خوب گوش کنید دعا کن ابواب جهنم دعوتگرانی می آین. دعوتگرانی می آیند در آخر زمان بر در دروازه جهنم می ایستند افراد و دعوت می دهند که بیای پیش ما فکر ما انگیزه ما حرکت ما و مذهب ما از هم بهتره دعاتون الى ابواب جهنم من اجابهم قذفوه الیها اگر هر کسی اینها رو قبول بکنه قذفوه الیها اینها داخل جهنم می اندازن قلت یا رسول الله صف هم لنا اینها چگونین ان؟ اینها کم تعریف کن نشانی ها اینها چگونه فقال هم من جلدتنا اینها بارنگ پوست ما هستن یعنی مسلمانن هم من جلدتنا اینها با رنگ پوست ما یعنی مسلمانان و يتكلمون به لسنتنا و صحبت میکنن با زبان ما اینجوری عربی صحبت میکنن هم معنی عربی میآید یعنی عربا میآیند هم ما این است که یعنی حرفها حرفای اسلامیان حرفها حرفا دینیان یعنی اینجا صحبت ها صحبت صحبتای اسلامیان این کارها رو میکنن فرمودند شما تامرنی اگر این افراد دعوت آمدن از مسلمانها بودن، هم زبان ما بودن، دارم ما رو دعوت میدم، پس مسلمانه دعوت میده، پس من چکار کنم چگونه بشناسیم اینها رو؟ فرمودند که اگر این چیزها رو دیدی، تلزم جماعت المسلمین، جماعت مسلمانها رو بگی. یعنی کدوم طرف جمهور امت کدوم طرف اکثر مسلمان ها کدوم جهتا همون بگی و امام هم و امام مسلمان ها کدوم طرف همون بگی بعد پرسیدن که یا رسول الله اگر دمانی مهی جماعتی نبود کل انسان ها پراکندی بودن یعنی معلوم نبود جمعیت اکثر مسلمان ها یک طرف نبید همه انسان ها بودن حالا چکار کنن فرمودن که برو که بیخ یک درختی بشین هم مجا اللہ رو عبادت کن و اونجا تمام فرغهر فاعتزل تلك الفرقه كلها اس تمام این فرقها فاصله بگیر و تنها الله عبادت بکن تازی زیر که تا اینکه موت تبیادو همونجا ببینی رواه البخاری این حدیث داخل صحیح بخاری اومده نگاه کن چقدر حساس نبی مکرم اسلام اینو خیلی حساس بیان کردن زمان ترین می آید پس هر کسی حرفی خوبی زد حرف خوبش دلیل این نیست که خوب باشه. خیلی شر در خوبی ها مخفی هست. پسران یاقوب علیه صلات و سلام همین کارو کردن. اومدن نحن و عصبه ما چرا ایتما نداری چرا یوسف را نمی فرستی یوسف را بفرست هم بینی تفریحی بکنیم. جای الله هم همین نختر واضح تر میگه در مورد منافقین. و اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم. منافقین وقتی میبینی خیلی خوب بدن‌های خوب و ان یقولو تسمع لقولهم سوره منافقون اگه منافقین صحبت کن تو پیامبرم گوش می‌کنی خیلی خوب صحبت میکنه پس هرکسی خوب صحبت که فرمودن نه اینجا آماده که شخص در مورد عبدالله بن عبی بود که زیبا بود قشنگ بود می‌اومده و زبان لغ بود خوب صحبت می‌کرد تاپلوسی می‌کرد نبی کریم متاثر می‌شد فوراً للرب الاله هشدار داد هزین حرف خوب متأثیر نشو اینها منافقه به هر حال برادران یوسف آمدن و قبل از این که طلب بکنن اما می که یوسف را نمی فرستن فرمودن که پدرجه ما میری کجا میریم که نرتا و نلع میریم اونجا میچریم میخونیم بازی میکنیم نستبیق مسابقه میریم بازی میکنیم حالا بیزار بریم اونجا و حضرت یاقوب علیه السلام و می ترسید که خوف اونها خوف اونها باشه از اونها می ترسید خطرناک بودن اینها هیله بی کار نبرم ای یوسف رو از من نگیرن. و اما نمیتونست به صراحت هم بگی نمی نمیتونست به شما دشمنی چرا فوراً انکار میکردن پدر چی میگی ما فرزندان تو نیستیم ما پیغمبرزاده زاده نیستی مگر ما برادر یوسف نیستیم صراحت هم نمیتونست بگه شما اینجا مشکلی داری و هدف داری فرمودن که اللہ من میترسیم که گورگی در مسیر باشه و اون گور بیاد یوسف منو بگیره و این و اینجا میشه و وقتی اللہ اینجا حضرت یاقوب علیه السلام پس اون تدابیر امنیتی رو اینجا رعایت کرد نگذاشت اما تدابیر هم سنگین اینجا باید باشه چون از طرف بعد فرزند است و فرزند با فرزنده ترجیحش کالی مشکلی بوده و یا فرمودن که من نمیتون صبر کنم دوری یوسف برای من سخته. چه فرمودن؟ قال اِنِّي لَيَحْزُنَنِي انتظهبو بیه و اقاف و یعکلوه زیب من, من غمگین وی کنی من میشم میشم، انتظهبو بی یوسف بگیری بری من اسفراغ یوسف خیلی نارهد میشم. و میترسم که گرگ او را بخوره و انتمانو غافلون و شما غافل باشی شما بازی بکنی جای دیگه و گرگ بیاد بخوره. اینجا حضرت یعقوب علیه صلاة و صلاة دو تا عذر آوردن عذر اول این بود که لیحظون انی من می ترسم ناراحت می که دوری یوسف من نمیتونم دو این است که گرگ هست هر زمین ما گرگ هست گرخیز اینجا گرگ شادی یاد یوسف را بخوره یا اشاره کرد مرض باطنی اون حسد گرگی و اون گرگ باطن شاد یوسف منو بخوره در دلش من است از این می ترسم وقتی و اونها گفتن که بابا ما یوری نیستیم من خیرخواه یوسفی ما او را دوست داریم ما نمیگذاریم که سویی به یوسف برسه و اما حضرت یعقوب بیشتر تونست بگه چرا تونست بگه چون یک گمان بودیم که اینا شاید بکشن وقتی روی یک گمان تصمیق گرفته نمیشه واحی نه آمده بود اگر واحی می آمد باید نمیفرستاد اطاعت واحی میکرد کرد بود فقط یک گمان تخمین ز کار رو بکنن و تنها بازدن و گمان حکمی ثابت نمیشه حالا دیگه زیاد هم اصرار نکرد اینجا و تغییر قسمت یا یوسف هم همین بود و اگر هم اگر یوسف را نمیفرستاد دشمنی بدتر میشد اگر اینجا نمیفرستاد یا یوسف را میکشتند یا پدر میکشتند چون این Here's خیلی خطرناک بود حالا باید از بین دو تا یکی از اینها رو باید یوسف حضرت یعقوب علیه السلام انتخاب می‌کرد" "وا هنگامی که انسان در دو مصیبت قرار بگیره باید اون چیزی که آسونتر انتخاب میکنه هر انسان هر انسان دیه. مثلا به طور مثال شما میرید سفر دریایی داخل دریا کشتی آتش میگیره در دریا هستی کشتی آتش گرفت حالا چه کار 4. دل کشتی میشین تابی سوزی یا کار دیگه یا داخل دریا بیپریم. اگر داخل کشتی بیشی اونجا هم از بین میری. داخل دریا بیپری، اونجا هم از بین میری. هر دوتا کشانده هستن. اما کار ما اینجا، وظیفه ما اینجا، آهوارالبلیجتینه. بعد همون مسیریک آسونتر انتخاب میکنیم. یعنی داخل دریا بعد بیپریم. داخل کشتی میسوزه، بعد داخل دریا بیپریم. زیرا شاید تخته کندش رو ما گرفتی برادیم. شاید دلفین آمد و مار نجات ده چون دلفین حیوان نجات دریا هست این هم بدونید این در های خیلی قدیم اومده حیوان نجات دریا دلفین است که الله رب العالمین گواشته برای نجات غریق گاه این هم میاد کمک کومک میکنه بہ هر حال اینجا حضرت یعقوب علیہ و والسلام از مصیر ایک رو اختیار کر حالا اگر نمی گذاشت امکان قتل شدیدتری غلب و حالا برو وقتی گنہار اور فرشتہ دا بخاطر خاطر تطعیب قلب اونها. بعضی میگن که اینها اومده اول حضرت یوسف را آماده کردن. برادر نمی فردا بریم بیعوان بریم تفریح. حالا میخوریم میگردیم پیکنیکی میزنیم تنورتی میزنیم اونجا بازی میکنیم. هست اینها رو میکنیم. قلب یوسف را آماده کردم، تحریح کردم. بعد یوسف وقتی که آماده شد پیش پدر آمده. و یوسف فرمده پدرجا من میخم برم برای تفریح. و حضرت یعقوب چون خیلی دوست داشتند که بگه یوسف نرو حالا برو چون هم محبت یوسف یوسف این چیزو میخواست بعد وقتی که حرکت کردم بعد اینجا گویا که اینجا فصل فصله بهار بود که انال اع و نرتا گویا فصل فصله بهار بود که برای خوردن بود بری الله pekni کنی کنیم و این آیا می درسون آیه ان دیام بازی میکنم نلغ بازی میکنید یوسف قرار پیغمبر باشه با ان بیا هم بازی میکنن اینجا استفریحات مووا، الله رب عاالیم در اینجا میفرند تفریح موا جایزه تگاگر کسی را تفریق از چیزی مبهی بود خلاف شریعت نبود رفت بهیابان تا سبزی جمع کره یا تفریح بکنه. این سیر صفات ی جا هم مشکلی ندارد اینجا حضرت یوسف علیه حصلات و واصلا از اینجا استفاده کردم یا این یعنی است که بعضی تفریحات خوبن، چا چی گفتن میری مسابقه میدیم خود مسابقه دادن آمادگی برای جهاده و اگر به این نیت باشه ها نبی بودن برای آمادگی جهاد داشته باشند چون یک تمرین جهادی هست به خاطر این عالم نیست چون در بعضی بازی ها که برای جهاد واسن جنگ واسن یاد گرفته اونها خوبه نبی مکرم السلام صلی الله علیه و فرمودن که سه چیز جزلا اون نیستن یکه شخص زیاد اسرو تربیت بکنه با اس مشغول باشه اینو ورزش خوبه یا کسی با همسترش بازی بکنه این هم گناه نیست یا کسی که کمان و تیراندازی رو یاد بگیره اینها گناه نیستن یک روز نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه بلند کرد که حبشی ها داخل مسجد نبی یلعون بازی میکردن با تعمیرات نظامی میکردن نبی نبی نگاه که وازی تنظیم نظامی می‌کردم و عایشه هم نگاه کرد یا یک فتنبی مکرر است داخل صحیح بخاری هست حدیث حدیث دیگه داخل صحیح بخاری هست که نبی مکرم سلام صلی الله عليه وسلم بین اسبه مسابقه گذاشت از حیفا ثانیہ یا از مسی بنو زریه قاص ثانیہ این هم حل مسابقات بودن که نبی مکرم اسلام دو دن نو اسب داشتن یک اسب اصل اون اصلی بود تربیه شده لاغر کرده بودن تا تند رفتار باشه ایک اصلی غیر تربیت دیافته ان که تربیت دیافته بود و لاغر شده بود مسیر طولانی تر بود و اون که تربیت نشده بود مسیرش نزدیک تر بود مسابق نبی مسابقه نبی کریم گواشته و بین ونا عبد الله ابن عمر بود و جایزی هم میداد پس این مسابقات نظامی مسابقات اصل دوانی اینها نبی کریم گواشته داخل صحیح بخاری نحا اومدین هر تا میگن که سابق بین خیلت عز میرد حیفا و اما دو از حیفا تا سنی طدا جای حوجات و ادقه میکردن این مسافافتات بزرگ و اون که نشده بودن از و نورق بودن تا سنیه مسافات کوتاه داریم. پس اینجا ما مامیری بازی میکنیم گفت حالا بره چون که مسابقه میدیدیم یک نوع تمرین نظامی هست اینجا گذاشت که برم. فرمودم و اخاف و آن یقل ح می که یوسف را گرگ بخوره. حالا اینجا همون اشارات قبلی یا گرگ وجود شما اون کینه های قلب شما یا گرگ واقعی او را بخورد چون که حضرت یعقوب علیه السلام خواب دیده بود قبل از اینکه بین یعقوب خواب دیده بود خواب چی بود؟ خواب دید که یه گرگی بر یوسف حمله کرد و ترسید بعد بیدار شد ترسید که این گرگها یوسف منو نخورن. و بعضی میگن کلبی میگه که حضرت یعقوب علیه السلام در خواب دیده بود که بالا قله کوی استادی یوسف علیه صلی اللہ سلام دره هست و پایین دره ده تا گرگ یوسف را مهاصره کردن خودش بالا قله هست یوسف علیه صلی اللہ دره هست و ده تا گرگ یوسف را اونجا محاصره کردن و بر یوسف دارن پارس میکنن و خیلی ترسید یکی از این گرگه ها رفت بیرون کنار گذاشته رف. این همون یهودا بود. یهودا بود که دوباره من برادر رو نمی‌کشان. پس اینجا فهمید که این گورگها، فا، تعبیر که دهتا فرزندن. و امکان داره همین نام اونجا درست میکنن و برادر بزرگ که علیه گورگ را کنار، امکان داره این گور حضرت نعمون یهودا باشه دوباره نزدیک او نروه. یا با خاطرین که سرزمین گورخیزی و زیاد. گور اونجا بود که. ترسیدن که من شما رو حالا نمیذارم. و بعضی میگن عبدالله ابن عب ی الله می حضرت یعقوب به فرزندانش این گرگ گر یعنی اوناها تعبیر کرد این گرگا. یعنی شما گرگ ها را نخوریدی به صورت خطاب کرد اما واضح نکرد بخاطر خاطر حسدی اوناها داشتم. هر حال صحرا بود و این چیزها وجود داشتن. اما اینها با این همه اشارات که پدر گفت که من میترسم. غم بر من آمده گرگه ها حمله با وجود اینها باز این گرگها رحم نکردن و یوسف علیه صلات و السلام را بردم چه گفتن؟ این اکله حضبه و نحن عصبه بابا مگه میشه گر او را بخوره و نحن عصبه این خاصی لخاسرون ما پس انجا خیلی ما ضرر کردیم و ما در خساره بودیم که ما باشیم ده نفر توانمند جوان و گرگه بیا از بین ما یوسف را بخوره. اینجا کلام را شیرینتر کردند. کردن خواستن که جلب اعتماد بیشتری حصد پدر پدر کامل در انها اعتماد داشته باشه به حال حضرت یاقوب دوتا اوزر آول لیحزوننی دو, دو گرگ اما اینها فقط یکی را جواب دادن گرگ نمیخوره. خوردن درستا بود گرگ دو حیوان نخورد خودشون خوردن و این اوزر اولی که مان تو ناراحت باشین اصرا به این توجهی هم ناکردند چون قسا دیگه خیلی بد بود بعد وقتی که گرفتند ورد حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہو می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتی نه نمیدونستند که نمی چگون هیلی درست کنه و حضرت یعقوب فرمودن میترسن گور گا بخورن اینا گفتن را حمیله از همین حرفا حضرت یعقوب علیه الصلاۃ و السلام اینها کامل دیگه هیره رو دریافتن هر حال نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که هرگز به مردم دروغ را تلقین نکنید چون که مردم یاد میگن و دروغ میگن این برادران نمیدونستن گرگ میخوره حضرت آقو فرمودند که میترسن گرگ نخوره آقو گفته بله پس گرگ میخوره دوباره گرگو اینجا بهانه آوردن فرمودند که لا تلقی الناس ناسف و یک زیبو تلقی نکن برای مردم بعضی حرف و چون اگر شما نشان بدهی خود اونها همون دروغار دوباره درست میکنند. به خاطر همین از در دیگه که این مورد نهی اومده. بعض میگه آقا این نزن یعنی بزنش. یا یعنی ازتا فلان جا شوند گیر همون جا بگیر. اینها دارن راه نشان میدم. حضرت یعقوب علیه السلام اینجا گفت میترسم گور گونه ها رو نخوره اینجا منزور گور همون گور که باطن اونها بود. اما اینها دیگه راه رو گرفتند و بعدها همیچیزو آوردند و باهان کردند. و پس اینجا معلوم میشه که خود بسلام با وجودی که حضرت یعقوب علیه صلات و سلام قبلها تعبیر کرده بود که یوسف نمیمیره یوسف میمانه تا این که دوار پادشاهی برسه به پیغمبری برسه اینها یوسف که میمانه این چیزها وجود داشتن آن وقتی که اینها بودن تو قبلا دیروز گفتیم حضرت یعقوب تعبیر کرد و یجتبیک ربک و یعلمو که من تعبیر الاحادیث پروردگار تر انتخاب میکنه تر بر میگوزیند بعد از اون به تعلیم میده پادشاهی میده پس فرنج ناراحت شد لا یحزوننی چه ناراحت شو وقتی خودش تعبیر کرده بود چرا بگه من ناراحت میشم از فراق یوسف اول این است که از این دوریش ناراحت میشم و دو این بود که میدونست که اینجوری بشه اما این سختی ها امکان سختی که یوسف به اون جاورسه خیلی مشکلات رویش بیاد از این مشکلات میترسید نخواست که یوسف علیه السلام از زیاد بشه تا رسیدن به او مقام اما همیشه دیگه برای هر چه مقام بزرگتر باشه مصیبت ها بزرگتره یا علت بعدی این بود که حضرت یعقوب ترسید که الله به او مقام میرسونه امکان داره اون مقام مشروط باشه به شرط اینکه این برادر این رو نکنن یوسف می میرسه به شرطی که این کارها صورت بگیره چون که این داستان مشروط بود امکان مشروط بودن داشت به خاطر این این چیزی رو کرد به صورتی که پس معلوم میشه خود تأثیر بر قلب انبیا می آید انبیا از حالات متاثر میشن اینجا هم دیگه حضرت یعقوب علیه السلام توصی حالا متاثر شد نبی مکرم السلام صلی الله عليه و الله رب العالی فرمودند که در بعد حالا وقت بعد جنگ بعد در همین تاریخ بود اونجا نبی مکرم السلام صلی الله علیه و وسلم فرمودند که اللہ آیه ناظر کرده گرند که از یعیدکم اللہ احداد طایفتین امنها الله اللہ بشما و چیز میده یا فتح بدر میده یا قافلی که رفته بشما میده یعن یعنی دو چیزی که بشما میرسه باوجود این که اللہ رب العالمین وعد کرده بوده اما نبی مکرم اسلام در بادره اونجا التماس می کر التجاو می کر، زاری می کر که اللہ هم انته لیل ها دیل عصابه فلن تعبد خدای اگر این گروه را تو اینجا هلاک کردی دوباره بعد نمیشی چه اتهجامیکن به خاطری نبی کنی فکر میکه کن. شاید این پیروزی بعد مشود باشه روی بعضی کارها شاید ما نتونیم انجام بدیم به خاطر اینجا هم همین چیز بود پس نبی متاثر میشه حضرت موسی علیه الصلاۃ و السلام پیغمبر شد الله پیشه این فرعان فرستاد که نترس برو وقتی که موسی علیه السلام اون سحر و جادو اونها رو دید فاجس فی نفسی خیفه ترسی داخل در اینها چی و الله فرموده که لا تخف و الق ما فيه على آثار رو که نترس ببین چکار میشه یا وقتی که فرشته ها آمدن پیش حضرت ابراهیم علیه السلام دید که اینها قزا نمی من دعوتی درست کردم یک تنورچی آوردم یک کوابی آورد رو گذاشت دستهاک نمی رسیدن ترسید داخل دلش ناراحت شد این چی خبره اینها چی پس پس انبیا متأثر میشن در دل ناراحتی میاد اینجا به خاطری حضرت یعقوب علیه الصلا و ناراحت شد و این هیچ ربطی به خود نبوت نداره چرا به این سوره حضرت یعقوب علیه الصلا و ناراحت شده بود در تورات می آید خود حضرت یعقوب یوسف را فرستاد در قرآن یاد نفرستاد از قرآن رد بیکنه اون چیز در تورات هست تورات انجا تحریف شده یا این از که حضرت یعقوب نفرسته اصرار کرده آخر فرسته تورات اون قسمت را ذکر کرده و قرآن اتم و اکمل ذکر کرده از اول تا آخر پس این چاهی که این داخل چاہ قرار بود داخل چاہ بیندازن حالا این چاه آب نداشت اما در مسیر راه کاروانیان بود آب نداشت آبش خشکیده بوده بخاطرین داخلی چه می اندازیم که محل حشرات بود حشرات بود و موزیها مارو اغره داخلشن جا گرفته بودن محل حشرات چه بود وقت فلما ذهب به و اجمعوا ان يجعلوا في غیابة الجب و اوحینا اليه لتنبی انم بعمر هذب و هم لایشعرون وقتی کونها توافق کردن به این که حالا برندگی یوسف را می گیرند که داخل چه می الله اللہ رب العالمین به قلب یوسف الهام کردن که ما اینها رو متنبه میکنیم زمانی که اونها هم درک نمیکن این رو رکال دار انجام میدهن اونها رو ما متوجه میکنیم وقتی آمدن پیش پدر پدر جان بزار پدر جان بزار ما محافظه میکن نحن عصوه ما یک گروهیم پدر هم گذاشت بعضی میگن که یهودا یا برادر بعدی عدلتی یوسف را گرفت روی شانه هایش روی شانه ها اولند کرد رقص می کر محبت میگه و برادر جهالا تا پدر ببینه به حوال با محبت دارم فاصله می گیره. با این محبت فاصله فاصله به محبتی که از اونجا فاصله گرفتن انداخت رو زمین از بالا پایین انداختن لاوی روی سیلش افتاد خواست او رو بکشه گفت چرا من رو من رو بذار و یَهُوزا آمدو جلور گرفت مگر شما نگفتی او را نکوشیم در بعض روایت میگه وقتی که برادران گرفتند و بردن و بعد از زودگی به معنی از پدر فاصله گرفتن تنها یوسف هستو با ده تا گرگ اونجا دیگه تنها بودن و تنها بودن یوسف را گرفتند و انداختن این برادر میزد یوسف را پیش یوسف فرار میکنه چون تفلی بود پیش برادر بعدی به پای او میافته تا دستو میگره به داده من منو کمک کن منه دست این راها بیرونکن. اون میزد محک ظبی میانددا پیش برادر بعدی میره اوو میگره که منو رها ب من رو جاذبه چرا بره وقتی پیش او میرد او رو اضوی میانداخت و او رو با سنگ میزد با مشت و لگت پیش برادر بعدی میره و او این کارو میکنه. و بازی در بعضی روایت میاد که یهووزا. باید فرمودند که برادر جان تا زمانی من زندم تو کس دستی به تو نمی اول منو بکوشید بعد یوسف بکشید این برادر کمی چون که بزرگتر بود کمی ترحم کرد و گذاشت اما دیگر هیچ رحمی نبود فقط می زدند و می انداختند و خواست او را بکشند و یوسف علیه صلات و فریاد می زد ای یعقوب تو کجایی یا یعقوب کجایی اللہ تعالی ما یسنو به ابنکی اکاش کاش که اینها دارن با پسر تو چه کار می این فرزندان تو دارن با من چه کار بعد جهود ها گفتند که مگر شما وعده نکردید که یوسف را نکوشید، ما که با هم توافق کردیم نمی کشیم. فقط قرار بود داخل شاهی بیاندازیم وقتی رفتم اونجا یوسف علیه السلام و تنابی بستن و تناب که وقتی بستن بعد از اون آویزان کردن با ویزان کردن میگن که دستاشو گریه با چا چایی دهنش باز بود لباسو بیرون کردن لباسو بیرون کردن و این لباس پر از خون بکنن با خون گرگالا ببرن پیش پدر بعد حضرت تا پدر هم بفهمه که یوسف کشته شده بعد فرمودن که لباسو منو بدین بذاری من خودم مخفی کنم بدنم پوشیده بشه چرا لباس منو بیرون میکنین وقتی اینجوری گفته حضرت یوسف فرمودن گفته آه چرا ما رو میگی کمک کن بگو همون ماه رو کمکیت کنه بگو خورشی تو رو کمک بیکنه بگو همون ستارهات رو کمک بیکنه دارت رو سجده بیکنه از ما کمک میخوایی این کار رو نکردن بعد فشار آورده رو یوسف حالا داخل چه وقتی که آویزان کردن تا نصف چه که رفت اینجا تناب رو لاوی قط کرد که بره پایین بیوف داخل چه سخر سنگی بزرگی بود. به روی حبو سنگ بزرگ افتید تا مغزش بتلاشی میشه و یوسف از بین بره تا نصف چهار و با کارد این و قطع کرد در این حدیثی دارین که جبرائیل امین فایعه فایارشی لای بود الله فرمودن که جبرائیل ادر که عبدیم در یا بنده منو این فارن جوی رسیده و گری حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام را روی صخره سنگی گذاشت اینها فکر کرد یوسف در ته چه افتاد اپوایه بین رفت وقتی که اونجا افتاد حالا فکر کردن اونا دیگه میگفتن یوسف اول که ها ببین بیان به دادش برسن دستو بگیرن اینجا که انداختن یوسف علیه السلام گریه کرد و, و ندا میده برادرها فلانی فلانی منو کمک کنی چرا منو میاندازید فکر کرد شاید دل اینها رحم بره وقتی داخل چاه افتاد حالا اینا گفت یوسف یوسف یعنی ببین آ یوسف مرد زنده است یعنی میبینن علی مردی زنده اینا دنبال مرگش رفتند یوسف علیه و السلام فکر کرد شاید برادران حالا در دل اونها ترحم اومده میخوان ما منو بیرون کنن فوراً فرمودن بله نداد که بن زندان ما رو بیرون کنید خاصا دوباره سنگ رویش بیاندازن سنگ, سنگ بزرگ را داخل چارو یوسف علیه السلام بیاندازن تا اینکه یحوذا جلو اونها رو گرفت و گفت, گفت نه من نمیذارم شما که قرار بود که کارها را انجام ندهیم و خود یهوذا هر روز برایش راشق می میآورده می و هر روز میاد از یوسف علیه السلام و سلام خبری میگرفت ها بعضی میآیند و بعض, می بعض روایت میآید که یوسف علیه السلام و سلام وقتی داخل چاه انداخته شده فورا ندا داد که یا شاهدا غیر غایب ای شاهد کسی که حاضر است و غایب نیست یا قریبا غیر بعید ای کسی که نزدیک است دور نیست یا غالبا غیر مغلوب ای کسی که غالب است مغلوب نیست این الله رب العالمین و صدا آزام اجعلی من عمری فرجم و مخرجا بار لاها شاهد ای غالب بیا منو عظیم و شکل برحان من برا من فرار بیرون بی آوارا در بعضی روایت می آید وقتی که ابراهیم علیه صلاة و السلام در, در, در آتش نمرود انداخته شد اوریان او را انداختند وقتی اوریان انداختند جبرئیل امین یک دست لباس ابریشمی از بهشت آورد دست لباس ابریشمی از بهشت آورد ابراهیم علیه الصلاۃ و لباس رو پوشید بعدا همون لباس رو داد به حضرت اسحاق و اسحاق هم داد همین لباس رو به حضرت یعقوب و یعقوب علیه الصلاۃ سلام دادی لباس ها رو مانند یک گردن بند کرد در گردن حضرت یوسف وان رو آویزان کرد داخل چاه افتاد حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ و سلام همین لباسو بیرون کرد و حضرت یوسف را پوشانید ایک روایت تفاصیل به این صورت آمدی است بعدی بعد میگن کہ حال یوسف علیہ الصلاۃ سلام چند سال داشت در بعضی روایت می یوسف علیہ الصلاۃ و سلام سال داشت بعضی میاد دوازده سال داشت بعضی میاد که هفته سال داشت اما بعضی میاد بعض سغیر بود و بعضی کبیر بعض بود, بعض بود اما در اصل نبالغ بود الله رب العالمی عقل کاملی داده بود که اونجا فریاد میداد الله رب العالمین را صدا میزمانند حضرت،, حضرت عیسی علیه السلام در کودکی و در گهواره سخن گفتند اینجا الله میگه با اوحی نایلیهی که ما کردی یعنی در دلش الهام کردی, کردی در دش ایقاق کردی به در درجای بیفرمان که و آو حربک اهل نحلی که من به طرف زنبور اصل الهام کرد. پس الهام هست این خود الهام می بود که الله رب العالمی بر قلبش کردید بود چون یوسف علیه السلام تو به بستن پیغمبری نرسیده بود حالا این چاه میگن بعضی گفته این چاه در اردن بود بعض میگن نزدیک اردن بود بعضی میگن در فلسطین در بیت المقدس فلسطین بود و به هر حال سه فرسخ از حضرت یعقوب این چاه فاصله داشت و به هر حال جبرائی وقتی که انداختن جبرئیل امین هر روز میآمد پیش حضرت یوسف علیه صلیه و و تنها نمیگذارد. سه روز داخل چاه ماند سه روز داخل چه ما، جیبرائیل امی هر روز می و با او صحبت می کرد و او را معنوس می کرد وقتی می بره یوسف علیه صلات و السلام می گفت که جبرئیل داری میری و منو تنها می گذاری وقتی که من تنها میشم میترسم می, من می حضرت جبرئیل فرمودند که وقتی تنها میشی این دعا رو بخون که یا غوص المستقیسینی یا مفرج کرب المقروبین قد مکانی و تعلم و حالی ولا یخف علیک کشی و من امری این دعا رو بکن ای کسی دادرس درماندگان در هستی ای کسی مشکلات رو بر ترکت میکنی بالله ها می دونی جای من را می حال منو مخفی نیست بر شما حال من, حال من این چیزو رو می گفت فورا فرشتهها ها می و یوسف را احاطه می نبی مکرم سلام صلی اللہ علیہ وسلم در حدیث دیگر هست که جبرائیل امین آمده و این دعا رو داخل چاه به حضرت یوسف علیه صلی اللہ و تعلیم دا بگو اللهم اینی اسألوک باسم کل المخزون یا بذیع السماوات والارض یا ذر جلالی والاکرام ان تغفر و ترحملی وان تجعل من امری فرجا و وان و من حيث احتسبی و من حیث لا این دعا رو بخون وقتی این دعا رو خون الله رب العالمین گشادگی رو آورد و رزق او از غیب آورد همین که نحیس و احتص و من و لا احتص از جایی که من نمیدونم من رزق بده الله رب العالمین خاطر همین دعا, دعا دعا حضرت صفر قبول کرده و پادشاهی مصر را به ایشان عنایت کرد این است که نبی مکرر اسلام فرمودن این کلمات را یاد بگیرید این دعاها را یاد بگیرید چرا این دعای انبیاء صالحین هست الله رب العالمین مشکلات شما رو برطرف میکنن بیرحال این بیرحمی برادران بود که یوسف را با این حال داخل چهر رحا کردند که گرگه ها را بخورن یا با حیوانات بمیره اما الله رب العالمین با سبلی که یوسف کرد پادشاهی میس و مقام بزرگ نبوت به ایشان انایت کردند.